مهاجر نویسنده و کارگردان ابراهیم حاتمی بازیگران سید علی رضا هاتمین چه بهتر که غصه تکلیف رو بخوریم نه تشکیلات ابراهیم از خرزانه کار سختیه بهتره بهشون والدیم علی رضا هیدری سید سید سید قفور از خر نقیزاده آقه مرد سابی یه ایستی یه دادی یه چیزی همین طرید علی رزا زاهدی قفور جان چند دقیقه وقت میبره هفته موسیقی کریم گوگردچی تهیه کننده حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی وسط نیزار محمود پوشه‌ای در درس وارد کادر میشه آرام آرام راه می صدای انفجاری در دور دست به تابلوی می رسه که کلامی از امام خمینی رحمت الله علیه نوشته همه ما مأمور به تکلیفیم نه مأمور به نتیجه به مردابی با چند قایق موتوری می رسه رزمنده ای با کلاه بافتنی کنار مرداب نشسته و فلوت می زن. نگاهی به اون میکنه کنه اسد دست از فلوت زدن میکشه نگاهی به محمود میکن. محمود به سمت اسد میاد و کنارش میشه محمود پوشه رو به اسد میده عکس یه دکل که با ماجیک قرمز دورمون دایره کشیده شده به جایی رسید آره چاپش پش کردیم کار سختیه بهتره بهشون قول ندیم چرا؟ اگه از پسش برنیایم آب رو ریزی میشه.دون دکل چون خیلی دیگر آبرام روش. می چه حرفیه؟ کاری که تجربه نشده درصد خطاش خیلی بالاست درسته خب چوب بی تجربه گیر میزنم. چوب بی تجربه گیرو نه چوب باور رو. باب با همین تشکیلاتی که توشیم تجربه بود چقدر بریشمون خندیدن به خاطر همین تشکیلات هم که شده بیگودار با آب نزنیم چه بهتر که قصه تکلیف رو نه تشکیلات الا باختیم آقا ما اسد با ماژیک دو فلش روی تصویر میکشه قایق آهسته از بین نیهای نیزار رد میشه با پارو قایق رو به جلو بکنه حرکت آهسته بین نیزار با پارو ادامه داره مطور قایق خاموشیم گیاهان و نیه رو با پارو به کنار میزنن و راهو باز کنن هواپیمایی رد میشه بمبی میمیدزه چند متر عقبتر از اونها جایی که چند لحظه پیش رد کردن در آب میافته محمود پارو میزنه و رزمنده دیگهی بیسیم در دست داره و جواد هم پارو میزنه حرکت در رود لابلای درختان و ها ادامه دن هر دو پارو میزنه باز هم بندی چند اطمت به جایی میرسن که با احتیاط بیشتری پارو میزنن گویی چیزی توجه اونها رو جلب کرده قسمت های تک پاره یک قایقو توی آب میبینه. جعبه مهمات در درباز به جایی میرسن که با سیم خاردار محافظت شده قایقو نگه میدارن و از اون پیاده میشن اصد نیهارو کنار میزنه تا ببینی. همون دکل نمایان میشه پارو, بده. پارو رو از جواد میگیره و شاخهای جلوتر رو که دستش نمیرسه کنار میزنه تا بهتر ببینه حالا بهتر دکل رو ببینی با دوربین شکاری دکل رو رسد میکنه بگو حذری قفور گوشه بیسیم رو برمیده سهید سهید دفور. در جای دیگه سعید, سعید که دقیقه. به همراه محمود رزمنده دیگه مشغول آماده سازی هواپیمای کوچیکه به سمت بیسی میره و گوشی رو بر محمود راکت ها رو زیر هواپیمای جاسازی می کنه. غفور سعید به سعید جان ها حاضری شنیدم بگوش باشید بچه ها رسیدم. بگو چند دقیقه وقت میبره. غفور جان چند دقیقه وقت میبره؟ مفهومه؟ مفهوم شد. ماشینی از دور نمایان میشه. هاجی داره میاد. اونا کیه نمیدون سعید کلید دوربی رو بزن سعید از جعبه دستگاه کنترلت راه دور رو برداره آنتن رو بیرون میکشه دوربین هواپیما کار میافته و چند عکس می گیره. درست کار می واننت از راه میرسه. سای دوربین رو خاموش میکنه. حاجی با چفیه دوره گردن پیاده میشه و به محمود و علی نزدیک میشه. علی میره که دستگاه کنترل هواپیما رو بیاره. خسته نباشید. سلامت باشی. هنوز بچه ها نرسیدن؟ چرا الان خبر دادین؟ بس چرا بلند نمی‌کنین؟ علی آقا رادیو رو بیاریش. ماشین دیگه ای هم میرسن. سه نفر از ماشین پیاده میشه. با رفقا اومد این حاجی. بچهای اطلاعات حاج کاظمی هم یگفتی ما هم دوستمونو خبر می‌کردیم، بلکه خرده دوربینی عکسی خبری. دیلم دوستاتا. فکر می‌کنم از سه قوانع ات کرده. بکش. علی دستگاه کنترل رو به محمود میده و محمود به طرف تازه واردی میره و با هم دست می‌کنند. سلام ملک. سلام ملک. خیلی سلام. خوشم. باشه. علی زامن راکتارو برده. خمپارهای در چنمتی اوها اونها به زمین. محمود میخواد هواپیما رو امتحان کن دستگاه رو روشن میکن باله ها کار میکن. هر دو طرف باله های اقم حاجی پیش ستازه وارد میره و توضیحاتی میده علی منخ هواپیما رو میچرخ. موتور روشن میشه آماده پروازه گازش رو چک میکنه سال علی در پوش دوربین رو بر سعیید هواپیما رو گرفته رها میکنه و هواپیما روی زمین حرکت می همه منتظر نتیجه هستم. خونپاره دیگه. کنترل هواپیما کاملا دست محموده. بالاخره در مسافت دور از زمین بلند میشه. هواپیما در هوا پرواز میکنه و محمود با دستگاه کنترلش میکنه. چرخشی در هوا. تغییر مسیر به سمت راست. سعید پیش محمود میاد. سعید گوشی بی دستشه دست امر مهمی در پیشه بگو حاضر باشم قپور قپور سعید سعید قپور بگوشم قپور جان حاضر باشی سعید جان از قول من بگو اول و مفصل بعد دکر قپور جان الان حاجی اینجاست میگه اول ثبت مفصل بعد آتیش مفهومه؟ اسد که با قفور نزدیک دکل هستند با دستگاه کنترل رادیوی دیگی که عکس امام رحمت الله علیه روی اونه منتظر هواپیما هستند تا اونو در هوا تحویل بگیرن. قفور با بیسیم اطلاع میده. هواپیما نزدیک میشه. دیدمش. بگو بده به راست. جان داریمش یکم بده به راست. جان حاضرین بشم الله. الله محمد محمد علی. هواپیما به طرف دکل میره و حالا کنترلش دست اسه هواپیما کنترل میشه و به منطقه مورد نظر می رسه با دقت اونو دنبال میکنه با دوربین هواپیما از منطقه عکس می یه اکس دیگه عکس دیگه؟ عکس بعده عکس از جاده. عکس هوای منطقه و چندین عکس دیگه. کنترل در دستان اسد. باز هم همینس. رزمنده همراهشون به ساعتش نگاه میکنه اسد نگاهی به کنترل می‌ندازه. هواپیما در آسمان هنوز در مأموریت. قفور بلند میشه. لبه قایق میره. شاخه ها رو کنار میزن و نگاهی به دکل می‌کنه. برای دکل هم سوخت بذار. هواپیما به دکل نزدیک میشه نزدیکتر کنترل هواپیما در دستان اسد و به خوبی هدایتش میکنه اسد نگاهی به دکل میندازه. بفر جان داشته باش بجو حالا دکمه یک قربزه شلیک دفت نمیخوره و دو راکت از کنار دکر رد میشه هواپیما دوری میزنه و باز به سمت دکر میده اسد با دقت هواپیما رو دنبال میگنه دکمه قرمز و راکت بایی به پایه های دکر میخوره یه راکت شلیک دکر رزمنده دستی به پشت اصد میزنه و لبه قایق میشه و باز هواپیما توسط اصد کنترل میشه و در هوا به پروازش ادامه میده سرباز اراقی به سرعت از پله های دکل پایین میان و اصد میبینی زمان شلیک مجدده انگشتش روی دکمه قرمزه اما فشار نمیده مردده انگشتش میدرزه هواپیما را از دکل دور می‌کنه تا سربازی را بی‌خودی از بین نبره افور که متوجه شده سر به زیر می‌ندازه. همینطور که اسد مشغول کارشه توجه رزمنده به شخصی که بین نیها حرکت می‌کنه جلب میشه. می‌دونه. یه جون آهسته با سلاحش به طرف نوک قایق میره. اسد هنوز سرگرم کنترل هواپیماس و توجهی نمیکنه. دکر خالی. پس باید زد زمانش میگرسید. اسد چشماشو میبنده و دجال متناشی میشه. اسد هم خیالش راحت میشه. قفور پیش اسد میاد خوشحاله سر روی شونه میذاره رزمنده میخواد پیش دو نفر دیگه بره که صدای توجهشو جهن میکنه مردی در لباس قواسی توی آب دستاشو بالا میکنه قواس به طرف هواپیمایی در حال پرواز دست بالا میکنه خیلی خوشحاله قفو جان تماس بگیم رزمنده با سلاحش اون رو نشونه رفت. سعید سعید قفو آخه مرد سابی یه ایستی یه دادی یه چیزی همین ترید سعید سعید قفو اینجا چیکار کنیم؟ ایچ اتش... فقط یه تماشه سعید جان میشبورم الله. محمد محمد علی علی گرفتیش؟ گرفتم دست نباشیم دستتون درده کنی. کلی قیبت این قارقاره که تو میکردیم حلال ممکنیم هنوز خود شما نکرده ها به هاش سلام برس. اخ اوه اخ الان داد رفیق هم در خدا حافظ سلام حواس جم کن راستی بگم یه موشک نکرده حواس از اونا دور میشه هواپیما به محل اولی خودش برمیگرد سعید با بیسیم صحبت میکنیم همه منتظر برگشته هواپیما هستن هواپیما ر صہی با بیسیمش پشت محمود. بیاره. یه که شون نکردیم. بگم بچا احتیاط کن. بی گلاز نمی، سای خبری تو حالا میشونه. دو نفر به طرف هواپیما بیان. حاجی با بیسیم صحبت می‌کنه. قفور قفور سعید. قفور قفور سعید. سعید قفور بگوشان. قفور جون شیریا رو وا؟ مندلو شیرشی. مفهومه؟ دستتون درد نکنه. اجرتون با حسین. هاجی مو کالمرو تمام میکنه و گوشی رو به سعید میده و خودش به طرف هواپیما میره. محمود دوربین هواپیما رو به هاجی میده. هاجی جان زحمت چه بکشی؟ عکس گرفته؟ خوره. الان میدم ظاهرش کنم. دستتون درد نکنه. هاجی در اتاق تاریک در کنار عکاس هست و عکس ها را ظاهر میکند. یه چیزی لازمه هاجی چیزی دیده. عکاس دست نگه میداره. نگاهی به هاجی میکنه. چیزی متوجه نشه. حاجی روی عکس دقت میکنه عکس نورو و خاموش میکنن و, نور و قرمز رو روشن میکنه و به کارش برای ظهور عکسهای دیگه ادامه میده حالا مدتی گذشته حاجی پرده سیاهی دریچه عکاسی رو باز میکنه و به سوانت که پشت اون نیروه نگاه میکنه حاجی خوشحاله عکاس پیش حاجی میاد اما حاجی محوه تماشاست ماشین های بعدی هم از راه میرسن پر از نیرو سه چهار دیگه. حالا حاجی عکسارو میگیره. حاجی جان بفرمایید. عکس‌ها حاضر شد. نیروها یکی یکی پیاده میشه. حاجی از ماشینی که به عنوان عکاسی استفاده میشه خارج میشه. از پلاش پایین میاد. موتور سواری که اونجا منتظر حاجی سوار موتور میشه، استارت میزنه. حاجی به اون نزدیک میشه و پاکت عکسارو میگیره. سلامتش. جوان موتوصوار میره و از کنار تابلوی واحد مهندسی رزمی رد میشه حاجی به سمت نیروهایی که دارن به خط میشن میره سلام علیکم سلام علیکم شما خسته نباشه از عیسی شخم. شب میام سنگر صحبت میکنم چی شده حاجی؟ نکنه سوختن؟ نه به همدلله چاپ شدم بزا من یه سربرم فرمانده ای نتیجه رو شب بهتون مییم پس تکل از کار افتاد افتادخوااست خدا بود آقا محمود دیگه شکایتی نداره به این ریسگاه نمیار توکلش می با چه شوقی اومده؟ مطمئنم دلت نمیخواد اون آببرا با خون اینا رنگشت حاجی و اسد و محمود از روی نقشه اوزار و بررسی میکنه دشکر شون از غرب کشیده اینجا حالا این طرف خیلی سنگین شده. بچه میگن فعالیتشون سه برابر شده خوب اکسای ما همچین چیزایی نمیگن یعنی چی؟ ما فقط تونستیم حاشیه رو شناسایی کنیم این یعنی شناسایی ناقص چی تو فکرتون آجی؟ پرواز عمقیتر یا بهتر بگم شناسایی عمقیتر این پیشنهاد شماست یه دستور اونا این چه حرفیه که میزنی؟ اینم نتیجه دکل زدن ببین سطح توقع کجا کشید زود نتیجه میگیری زود نتیجه میگیرن حاجی شما که اهل کارین برای پرواز این چیشه باید ببینه یا نه؟ خب خوب ما که تا جایی که چشم سو کشید پرواز دادیم دیگه این عمقی چیه؟ یعنی هیچ راه حلی نداره؟ چرا؟ بهترین راهش اینه که خودمون سوارش بیشی نظر تو چیه؟ نگاهی به محمود میکن فکر کنم پرواز کور میخواد پرواز کور؟ با کدوم تحسیزات؟ اسد تازه سربالند میکنه تو بعضی پرواز و شرایطی پیش میومد که پرنده گم میشد مجبور بودم ندیده هدایتش کنم چقدر وقت داریم؟ خیلی کم می‌تونه فردا رو تمرین کنم؟ باشه. آقا اصغر، دارین چی رو قبول می‌کنی؟ یه راه حال دیگه هست که فردا باجی این نقشه رو جمع می‌کنه و بلند میشه. اجلتا خدا حافظ. حاجی و محمود و علی قصد دارن پرنده رو به پرواز در بیارن. محمود و علی اونو چک می‌کنه. حاجی چند قدمی از اونا فاصله میگیره و با بیسیم صحبت میکنه اسد که در نقطه دور ایستاده تکون میده و آمادگی خودشو اعلام میکنه اسد پشت تپه میره حاجی پیش محمود و علی برمیده یک دستگاه رادیوی کنترل از راه دور دست محموده اسد در دشت تنها منتظره آماده باش. علی هواپیما رو رهاش میکنه. هواپیما کمی روی زمین میره و بعد بلند میشه. محمد علی. با این شمارش کنترل هواپیما به اسد سپرده میشه. هواپیما بالا و بالاتر میره. اسد اونو دنبال میکنه هواپیما دورتر میشه تا دیگه دیده نمیشه حالا اسد چشماشو بسته و ذهنی هواپیما رو هدایت میکنه صدا نزدیک میشه نزدیکتر نزدیکتر الان که به اسد برخورد کنه ناگهان چشماشو از ترس باز میکنه اما اینا همش خیال بوده و هواپیما از راه دور تازه به اون نزدیک میشه اسد کنترلش میکنه و هواپیما رو به بالا هدایت میکنه حرکت به چند. حرکت به راست حاجی بیسیم در دست از دور شاهده هنر نمایی اسد هواپیما دوباره دور و دورتر میشه تا اینکه باز هم دیده نمیشه اسد دوباره چشماشو میبنده باز هم صدای نزدیک شدن هواپیما میاد نزدیکتر میشه باز هم نزدیکتر اسد فکر میکنه باز هم صدای ذهنیشه سرش پایینه لحظه این نگران سر بلند میکنه هواپیما واقعا داره بهش نزدیک میشه نزدیکتر الانه که به صورتش میخوره میشینه و هواپیما از بالای سرش رد میشه خطر رخ شد. اسد جان خوبه؟ حاجی و محمود نگرانن. اسد که حسابی مشغول تمرین و کنترل هواپیماس پاسخی نمیده. اما صدای حاجی رو میشنوه. اسد زانو میزنه و به حالت سجده به خاک میفته. کنترل هواپیما در دستشه. باد تندی وزیدن میگیره، خاک بلند میشه. صدای هواپیما که نزدیک میشه. صدای هواپیما و باد و طوفان در هم میآمیزه و لحظه بعد به پایان میرسه. و اسد که همچنان سر بر خاک داره. هواپیما از راه میرسه و چندین متر اون طرفتر به زمین میخوره اسد از خاک بر و به آسمون نگاه میکنه هواپیمایی نیست فقط تکه ابرهایی در آسمون دیده میشه اسد اسد اسد حالت خوبه؟ اسد اگه سلام رو جواب بده؟ بلاخره اصد بیسیمو جواب میده گمش کردم گم نکردی شو بیا تا ببینیش اسد با سر و روی خاکی گرفته بلند میشه و آرام آرام راه میره و به طرفی که دیگر یاران هستند میره به تپه میرسه و میبینی که هواپیما لابلای سبزه ها و درخچه ها افتاده و بقیه به طرفش میدوند حاجی تکه از هواپیما که کنده شده رو بر میدار و از دور نگاهی به اصد اصد هم خوشحال عرق پیشونیشو پاک میکنه هسته نواشی. دل و محمود و جواد به همراه حاجی در یک کانکس کنار هواپیمای کوچک تکه تکه شده هستند. حاجی پیشناده بعدی تو بده مطمئنی که کارت عملی نیست؟ <تصف> تنظیم دستگاه آسونه <تصف> ولی تنظیم این خیلی سخته قلبشو میگه با این حال میتونم یه روز دیگه هم صبر کنم من نمیتونم مگه آقا محمود قبول کنه همین که شما تونستین برش گردونین به نظرم خیلی جلائیم منطقه های شیبه ها شخصیه خیلی شخصی من نمیتونم روی نوع رو حساب باز کنم پس من پیشنهادمو میکنم ببینین ما تا حالا دو پله عمل می‌کردیم اولی باند پرواز دومی خط جلو فکر می‌کنم سومین پول مشکل رو حل کنه محلش کجاست؟ محدوده دشمن تنها میریم؟ نه، با بچه‌های اطلاعات ما حاضریم نه آقا حسد، این کار تمرین می‌خواد پل یک با آقا جواد پل دو با شما پولش هم ان با خودم. اسد دست جواد رو میگیره. قایقی موتوری از لابلای نیها توی رودخونه حرکت می‌کنه. به اسد و محمود و قفور نزدیک میشه. همون قواسیه که قبلا دیده بودنش به همراه رزمنده دیگه ای که حالا به عنوان راهنما اومده. قفور پیش اسد. سلام علیکم. به به، السلام. پس مسافره شمایی سلام سلام علیکم خستانه سلامت باشی خبی چرا اینطوری؟ عرض کنم تا شوش دو طبقه است از اونجا به بعد یه طبقه مگه اونجا باید پاروی نیست؟ چرا؟ ولی همه پنچر آوا آقا فروسه باشیم اسد با محمود دست میده و سرویشونش سر میزنه پس اینشانه تا یه ساعت دیگه سر پاس چش مشکل نداریم؟ چرا قبول کردم؟ سوالهایی سخسخ نکن از خودت نه از من برقب در پس زمینه باز هم کلامی از امام خمینی رحمت الله علیه در نهزت ما شکست راه ندارد اسد و غفور سوار قایق درازمنده دیگه میشن و میرن محمود تنها میمون کنار رودخونه میشینی. چیزی در آب میبینه که برش میداره. فلوت عصاد. یه خاور و ماشینی دیگه از دور دیده میشه. نزدیک میره. ماشین توقف میکنه و حاجی از اون پیاده میشه و خواهر مفهر دو قایق که در هر کدوم دو رزمنده هست از درون نیزار و سبزه های دیگه نمایان میشه اونا پارو میزنن قایق جلوی ای درنگ میکنه تا قایق پشتی کنارش بیسته راه دست همراهش رو میگیره و اونو در کنار قایق خودشون نگه می‌داره. رد نکردی؟ من نفهمیدم. گیجم کرد. جهت اشتباهه؟ نه بابا کوچه رو مونچردن. چپ یا راست؟ همین سمت. راست. مینا تو همین کوچه. خدا کنه بمب بس همراه راه قایق و هل میده تا حرکت کنه هر چهار نفر شروع به پارو زدن میکنه نگران صدایی که میشنون هستند. نکنه دشمن باشه وارد راه باریک تری میشن قایق موتوری دشمن به اونا نزدیک میشه چهار تا سرباز توی اون هست بی از مسیری که اونا رفتن میگذن اج و جواد دم ماشین پای بیسی هستن. هیچ خبری نیست؟ نگرانه جواد کنترل در دست به طرف هواپیمای کوچیک که خودشون میره میشینه و اون رو برانداز میکنه. چهار رزمنده بین ن های بلند آرام اطراف و زیر نظر داره. اونجا خوبه کجا؟ اونجا؟ اونجا؟ حتمانمنا چ اون سنگه؟ سنگری بلوکیو نشون میده خطریه اخوی جان من دید میخوام یه جای باز باید ببینم که هدایت کنم درسته؟ همین؟ بله مطمئنی؟ از غر خودش رو در میاره و آروم بلند میشه از جان برو در رو با کنم اگه خسته ای خودم نه نه میره اصغر از, از قایق خارج میشه و توی آب میره توی آب حرکت میکنه و صدای قایقی اونو نگرم کرده بوم چند متر اون برتر از سنگر فرود خدا به خیر بگذار اصغر در آب راهشو ادامه بگه به سیمای خاردار میرسه صدای قایق موتوری نزدیک میشه اسقر سریع سرشو زیر آب میبره که دیده نشه سه نفر دیگه هم سرشون میرسد قایق دشمن با 6 هفت سرباز رد میشه و میره اسقر که روش نوشته کاف 125 از جا میکنه و به بقیه اشاره میکنه که بیان سه نفر دیگه هم با دست و پارو قایق قایقو هدایت میکنن و به اسقر که تابلو دستش میرسن سریع پیاده میشه اسد در جبهی رو باز میکنه کنترل رادیویی هواپیما رو بر می داره و به قفور میگه بگو حاضری. سعید سعید قفور قفور سعید بگوشم سعید جان ما شنیدم بگوش بشید. جواد در مقر خودشون هواپیما رو راهی میکنه هواپیما بعد از کمی حرکت روی زمین از زمین بلند میشه و راهی مأموریت میشه حرکتی به راست میکنه و حالا بالاتر میره داره میاد کنترل به دست محمود میفته سعید با محمود همراه دیدمش ارتفاعش چیه بره بالاتر دواد جان داریمش بده به خرشی هواپی ما بالاتر میده خوبه همینو داشته باش من حاضرم دواد جان همینو بشمون الله. الله محمد, محمد. علی, علی. هواپی ما تحویل داده میشه هفور و هفور فر و اسقر پیش اسد و قفو رفتن. یه بم نزدیک اونا در آب میفته. حسانه باشی. سلامت باشی. حجی میدونی کجا خود اومدین؟ چی شده؟ صاف بغل خونه. کجا؟ همین پشت نه. شهرش ما رو نگیره خیلی که هواپیما دیده میشه دیدمش خیلی دوره هواپیما در هوا چرخی میزنم سعید سعید قفور بگوشم سعید جا بده به رد بده به رد مفهومه مفهوم شد مناظرم سعید جان پشمو الله الله محمد محمد حالا اصد هواپیمای ما رو میکنه یه خونپاره توی آب میخونه سعید جان هوابی جا. ما ما حامدی اصد حواسش فقط به هوابی ما روست باده نمیشود نمیشد قبلن همه هنگ میکردی اگه قرار بود اینجا بیان یه بوم خیلی نزدیک اونا میفته که عمل نکرد اسد و از به هم لبخند میزنه راه نگاهی میکنه از محل بوم دودی بلند شده دود و بخار داره به سرعت در هوا منتشر میشه بری زنم سلامتی خودمون فاطمه سلامت اخبی حدود جادشون کدوم طرفه خبی، حواست اینجا باشه اصد مشغول کنترل هواپنگ است. خیلی دوری، خیلی دوری بگی بچم، بگی بچم همطور به شونم بده، کاری به پرنده نداشته باید پاشه، ببین؟ همین دوری. همین اینجا راه نما، حواسش به بمبیه که نزدیکی اونا باز هم در آب ورود میاد. بشین کچه، بشین، بشین بشین یه بوم خیلی نزدیک اونا به زمین میخوره هر چهار نفر خزن توی زنگر اسد میخواد بلند و به کارش ادامه بده بقیه میخوان مانعش بشن اسد بلند میشه اثری از هواپی مونده است دود آسمون و جلوی دید اسد رو گرفته گمش کردم اینجا موندم اصلت نیستش یعنی چی؟ یعنی همین دیگه بخار و دود موجود در هوا اونا رو به صرفه میندازه. چند دور پشت سر هم نزدیک اونا میافتید اما اسد با عزمی راسخ ایستاده و میخواد پرنده رو پیدا کنه. بمبی دیگه در ها. تکه های اون به هوا میره و دونه دونه توی آب می‌افته. اسد چشماشو میبنده و کنترل رادیویی رو مقابل صورتش میگیره. سعی می‌کنه هرطوری از پرنده رو پیدا کنه. میشینه. صدای پرنده میاد. نزدیک میشه نزدیک تر نزدیک سنگر رو را میخوره اصد تکونی نمیخوره بقیه بلوک روی بلوک میذارن صدای پرنده سنگر میانده اسقر که بلوکی دستش بود زخمی میشه اما اسد کوچکترین حرکتی نداره صدای پرنده تیری به دیواره سنگر برخورد میکنه و قفور هم زخمی میشه اسد لحظهی سر بلند میکنه صدای هوا میاد راهنما که بالای سر اسقره توجهش جلب میشه دو زخمی هم نگاه میکنه بله پرنده برگشته همه فقط به مسیر پرنده توی آسمون نگاه میکنن. همه نگران هم که عاقبت چی میشه؟. انگار بنزین تموم کرده و موتور از کار افتاده. اسد نگران بلند میشه. میخواد کنترلش کنه اما کاری ازش ساخته نیست. پرنده یواش یواش پایین میاد پایین تر پایین تر. تا اینکه از دید خارج میشه و اصد دیگه از پشت نیها اونو نمیبینه منطقه تقریبا آرومه محمود چفیه به گردن توی قایق نشسته و به ساعتش نگاه میکنه سربازی لیوان آبی به دست سعید میده در همین لحظه بمبی توی آب میفته که گلولای زیادی به هوا پرت میکنه سعید آبو رو میخوره بقیه آب میخوره و لیوان پس میده حاجی آروم گوشی بیسیمو رو به طرف گوشش میده غفور غفور سعید. غفور غفور سعید. محمود با بیسیم با حاجی صحبت میکنه غفور غفور سعید. سعید سعید جواد سعید سید جواد حاجی خودتی؟ بگوشم چی فکر میکنی؟ آقا محمود دیگه وقت ذکره فکر اما جوابی نیست قفور قفور قفور سعید قفور سعید قفور قفور قفور سعید پسد با دست خونی بی سیمو توی قایر میزن کنترل هواپیمارم توی جربه خودش میزن قفور که زخمی شده روی کولشه راهنما توی سنگر می پرد. هم پشت نیها می شینه. قایق گشت که چهار سرباز توی اونه و یه توب با خودشون دارن از اونجا می گذرن. یه قایق دیگه هم پشت سرشون با هشت سرباز. قایق بعدی هم هشت سرباز. اسد به قایق‌ها که دور میشن نگاه بود. راهنما از رو دوششه و اصد قفور این بسه میشه؟ برمیگردم یه جوری سر به نیستشون از کنار های خاردار رد میشن و محل ترک میکنه سعید جای دیگه توی قایق گوشی به دست خوابش برده محمود فلوت میزنه و قفور از خواب پا میشه نگاهی به محمود میکنه راهنما و اسد بین نیهار راه میرن به جایی میرسن که مقر اراقی هاست اونا دارن خودشونو آماده میکنن ماشینی از راه میرسه که دو افسر اراقی سمارشن اسد و راهنما اونها اونا رو نگاه میکنن نزدیکی یه سنگر میرن تانکیو میبینن که نفر روی اونن و توپشو چک میکنن ناگهان توپ خونه اراقی ها به کار و راهنما و اسد جا میخورن چند سرباز خونپارهی رو دست به دست میکنه از قسمتی دیگه خونپاره میگذن توپ و باز هم خونپاره اسد و راهنما نما مبهوت نگاه میکنه خونپارهی دیگه اسد روی شونهی راهنما میزنه و اونو فرا میخونه هر دو به عقب میرن و محمود که هنوز فلوت میزنه و عشق میرزه رمایی دور دو سه قایق بزرگ از کنار هم رد میشن و اسد اونا رو میبینه بمبی درمان یه بمب دیگه به یکی از قایقا میخوره اسد از میون نیها حرکت میکنه به جایی رسیده که نیروهای اراقی هستن قایق گشتشون میرسه قایق دیگه آماده معمولیته مرد همونجاست محمود فلوت به دست دست زیر چانه زده و غرق تفکر در قایقه نشسته دو قایق نیروی خودی از کنارش رد میشه از کنار نیزار و یک قایق خودی دیگه رد میشه یک قایق دیگه شبه و محمود به اتفاق دیگر هم رزماش نشستن و صحبت میکنند که رزمنده سپاهی سوالی بود تماس از کی قدر شد؟ حدود ساعت ده پشت ویسیم موردی چیزی گزارش نشد نه البته صبح نه بود نکنه راو گم کرده باشن به که گم شدن تماس چرا قدر شد اونا مستقر شدن رو که پرواز دادیم گرفتن اما بعد از تحویل تماس قدش ببینین نقشه رو باز میکنم نقطه رو نشون میده علی پاتوغش اینجا بود یعنی تو شناسایی اگه گمش میکردیم میتونه سیم توی این محل پیداش کنیم. منطقه وسیطری رو نشون میده حالا میگم صبح, صبح پاتوغ کور شد یعنی چی؟ نیرو ریختم راه و بستن. یعنی گیر افتادن؟ نه خوی این یه فرضه تازه پاتوقی یه گا بود ما که با هم وعده نداشتیم. شما کی دست به کار میشید یکی دو روز خودتون که شاهدین منطقه حساس شده تحرکات بیشتر از قبل کلی نیرو ریختن میدونم میدونم کی میگردیم علی و خرم با اونا بودن دو تا از بهترینام بودن نه هستن حاجی لحظه فانوس به دست میخواد وارد بشه که پشیمون میشه و برمیگرده حاجی فانوس به دست بیرون از سنگر منتظر محموده محمود بیرون میاد و پیش حاجی میده شباید به کده کشید؟ به نامیدیم بگه من که گفتم هفته تازهی ندیم به کدومون دست به کار بشیم قیمت بچه های خودمون یک سپر بگیم و فستر میکنم دمشون گربی <تص> میفته و هر دو لحظه میشید خد شلوک شده از ما خواستم دم به دم شناسایی کنیم بتر شد. تو دل اون کار این دیگه چیزی نیست فکر کنم جا جا گفتی تو دل این ماموریت اون کارم انجام میدیم یعنی چی میخواییم بگیم؟ وظیفه یادمون نه حاجی فانوس روی پوکه هایی که به شکل میدونگاهی درست کردن روی همچی درد میذاره همین امروز صبح بدرقشون کردی. یه روزم نشده فکر میکنی فراموششون کردم خوب گوشاتو باز کن اونا یه لشکری دیگرشون هم آوردن خدا میدونه چندتا تا لشکریخت اون تو کمیناشون اومده جلوتر تو همچین شرایطی چیکار کار میکنی؟ هیچی یادم میره که پرواز عمقی چقدر مهم بود یادم میره پرواز کور چه بلایی سر بچه ها آورد یادم میره اسد داشتیم قفور داشتیم شاید تاریخ مصرفشون گذشته واسی چرا آجی زخم زبون میزنی. اگه جوابی بر این سوالا باید بدم صاحبش تو نیستی فرق تو با سر همین چیز هست. یا بهتر بگم سر تکلیف حاجی از محمود فاصله میگیره و محمود کنار پوکه ها و پرچم ها تنها میمونه از فرق من با شما چیه؟ محمود با چفیه توی دستش بازی میکنه و روی پوکه ها میشینه گریه میکنه روزی دیگه دو قایق حامل نیروی خودی از بین نیها در رودخونه حرکت می‌کنند. توی قایق محمود ایستاده و هواپیمای در حال پرواز رو با کنترل رادیویی تحمیل می‌کنه. الله، اوما ما، علی. گرفتم. جواد جان محمدی، هواپیما در حال. دو بمب پی در پی در آب نزدیکی اونا می‌افتند. هواپیما پرواز می‌کنه و محمود کنترلش می‌کنه. به طرف اونا تیراندازی میکنه تیری به دست چپ محمود میخوره سعید اونو کف قایق میپذید محمود دوباره نیست چه خبری؟ نرفته شروع کرده بشین بشین یاری چی کار میکنه؟ از دینه تاقیه اونا اینجا دید دارن کجا رو دید دارن؟ اصالی از پرنده نیست و تیراندازی ادامه داد. محمود نگاه میکنه فقط آسمون آبی و نیهای نیزار سعی داره هواپیما رو پیدا کنه. اهرام کنترل به چپ و راست میبره اما نه. چیزی پیدا نمیشه محمود می‌شینه. درد دست بهش فشار میاره. صورتش خیس عرق. چشمش اون چه کاری بود کردی؟ اینم جای تشکرته. همین یه مهاجر بود. چطور بود اول اجازه گرفتم همین یکی رو. فدای سر دیگه نشسته بودی که تو امالا نبودی. جهنم. سویری در ذهن میبینه رودخونه لحظه چشم باز میکنه و دوباره میبنده حرکت سری از بین نیه رو در رودخونه میبینه مسیر عوض میکنه به بمبست نیزار میرسه صدای سعید اون رو به خودش میاره چشماش رو باز میکنه حیده شد هیده شد پرنده در حال پروازه خوشحال شده دوباره کنترلش رو در دست میگیری دکمه رو میزنه که میزان باتری رو نشون می درست ادامه عملیاتو داریم مهاجر رو به سمت نیروهای خودی هدایت میکنه داری چیکار میکنی؟ <تصفيق> چی بگم که حقمت تواعده کرده باشه؟ بگو حاضر باشم جواد جواد سعید جواد جواد سعید در جواب. بگوشم جواد جان حاضر باشید الله محمد علی هواپیما تحویل داده میشه و محمود که خیالش راحت شده میشینه یه قایق خودی نزدیک میشه که دو اراقی رو اسیر کرده. این تو مال اینا بود؟ الان گیر افتادن. از نیروهای گشتیشونا. سعید پیش محمود میونه. خسته نباشید دلاور. محمود رادیو رو را نشون میده. این خاموش بود. یعنی چی؟ یعنی یعنی اصد زنده است شبه. حاجی در کنار محمود توی سنگر اکسای هوایی رو مرور میکنند وجود اصد همه جا اسباه خیره حتی تو گرفتریاش نمیدونم قفرون اطلاعاتی کجا؟ جاها سلامته ولی چرا بر نمیگردن شهر از کمیناست مگه نگفتین کمینوشون جلو کشینن قابودن بچه های اطلاعات بعید میدونم نتونن برگردن پرواز فردا خیلی از مشکلات رو حل میکنه پرواز؟ پرواز به کجا؟ غلومه به همین اطراف یه مخالف پرواز کور نیستی حالا فرق میکنه چه فرق میکنه؟ پرواز کور یا وضعیت خودت؟ هر جفتش نه آقا محمود حالا فقط یه مهاجر دمه دستی اونم با کلی پرواز انجام نشده پس اینا؟ اینا سر جاشونه بهتر ما هم سر جامون باشیم دم به دم شناسایی این چیزیه که قرارگاه میخواد اما فرصت داریم و نه این راه حل تو عملیه خط منوری فضای شب رو روشن میکنه بارون شدیدی می‌باره. دستی در خاک وارد کادر میشه. خاکا رو جابجا میکنه یه قرآن، یه پلاک، یه تسبیح، یه شیشه عطر و یه کارت شناسایی روی خاک. دستی تسبیح، پلاک، شیشه عطر، قرآن و کارت رو برمی‌داره. علی همون راه نما ناراحت اونا رو توی جیبش میذاره از شهید شده و همونجا خاکش کرده اسد باز هم خاک میریزه لحظه صدای اراقی اونا رو به خودشون میاره علی نگاهی به اسد میکنه و سلاح به دست بلند میشه و در بین نیها گم میشه اسد فقط نگاهش میکنه و باز هم خاک دو استیشن اراقی زیر بارون شدید به کنار سنگراشون میاد و علی از بین نیها اونا را نگاه میکنه نیروهای اراقی سری به خط میشه ظاهرا مافوقشون اومده شخصی از همت کمک راننده پیاده میشه در عقب باز میکنه مافق پیاده میشه سربازی سلام نظامی میده و مافوق رو همراهی میده. بقیه خبردار ایستدن و علی مخفیانه اونا رو نگاه میکنه آزاد باش و سربازای های اراقی به دنبال کار خودشون میرن و فرمانده توی سنگر میره چند سرباز توی سنگر میرن چند نفر بیرون و دو نفرم سوار ماشین میشن و میرن نور ماشین لحظهی به طرف علی میفته که سرشون میدوسته علی از درون نیزار آرام آرام پیش دو نفر دیگه برمیگرده. اسد و غفور دارن برای اسقر دعا می و گریه میکنن هر سه از شدت بارون خیس شدن <تصفيق> <تصفيق> علی لحظه ای میایسته زانو میزنه و خودش رو روی خاک اسقر میندازه و گریه میکنه بارون همچنان ادامه داره. علی گریه کردن مشت بر خاچ میکنه. اسد دست علی رو میگیره و دلداریش میده دستی بر سرش میکشه. اما خودشم هم آروم قرار نداره. هنوز باران شدیدی میباره. موتورسیکلتی دم کانکسی پارکه. محمود در سنگر نشسته و فلوت میزنه و نگاهی به های توی سنگر میکنه. چشماش نمند محمود و سعید راکت ها رو به یه هواپیمای کوچیک نسب گردن و حالا محمود زامن راکت ها رو میکشه سعید باله عقب سمت چپ رو چک میکنه. آقا محمود مم. کار دستمون میداد چه کاری؟ اخراج؟ بازداشت؟ استاف. همین یه ماجر می بپره اگه پریدنی هست از برکت وجود هموناست اونا باید بدونن که ما فراموشش رو نکردیم آخه چه تا میخوای پاس بدی؟ اونا که منتظرمون نیستن همون کاری رو میکنم که اسد میکنم محمود کنترول از راه دور رو بر میدن کمی عقب میره و بالاهای عقب رو چکل خیلی خوب سالم. محمود باز هم امتحان میکنه سعید ملخ مهاجرون میچرخونه تا موتور به حرکت بیافته روشن میشه پرنده رو با دست هل میده و در مسیر پرواز قرار میده محمود گازش رو چک میکنه کمی عقب بیره و خیلی خوب کن سعید هواپیما رو رها میکنه کنترلش در دستان محمود پرنده بعد از کمی حرکت روی زمین از زمین بلند میشه به سمت راست میره ما نفهمیدیم بالاخره چطوری میخوای پاسش بدیم آقا سعید یه خورده تنه باشم سعید که کمی بهش برخورده از کنار محمود میره مهاجر در آسمان پرواز میکنه سعید توی کامیون میشینه و به پرواز مهاجر نگاه میکنه شیشه رو بالا میکشه ولی باز کنجکاوانه رد مهاجر رو دنبال میکنه مهاجر خیلی دور شده و به نقطه‌ای تبدیل میشه. سعید محمود محمودو می‌بینه که زانو میزنه، سر بر خاک میذاره و سعی میکنه با تمرکز و از روی دل مهاجر رو کنترل کنه. سعید همینطور نگاش میکنه و پیاده نمیشه. در نیزار اسد و علی نشستن و قفور دراز کشیده. علی روی یک تکه کاغذ چیزی میکشه. اسد کلاشینکوف به دست نشسته و در فکره قفور صرفه میکنه علی کاغذ رو تا میکنه و به اسد نشون میده خدا بیا مرزه حمید فلافورا برای رف گشنگی این را کرد باور کنیم با همین نصف روز سرپا بودی. بیا از تو شروع میکنه بگی ضمن ایمانم میخوا علی کاغذ رو به قفور میده قفور بیرمغ کاغذ میگیره باز میکنه تصویر یک مرغ بریان و قفور به سختی میخنده تکیت کاغذ رو جدا میکنه و تصویر مرغ بریان رو به اسد میده هر سه دارن میخندن که یهو صدای اصد متوجه خودش میکنه سلاح و زمین مزر رو بلند میشه و به آسمان دقت میکنه علی هم سلاح به دست بلند میشه صدای ماجره هرسه به آسمون خیره شدن تا مهاجر رو ببینن. حرسه متعجب و خوشحالن. اسد کنترل هواپیما رو برمیداره داره که بره. قفور از لابلای نهها مهاجر رو ندیده. من میرم سمت ابراه. آها، اونهاش. اسد و علی حرکت میکنن و میرن. قفور نای بلند شده. انده بریم سمت خونه اونجا باستره. اسد و علی لای نه ها هستن و دنبال فرصتی میگردن تا مهاجر و تحویل بگیرن و اراقی ها اونا رو نبینن چون خیلی به اون نزدیکن اصد آنتن کنترل رو باز میکنه فرمانده عراقی سربازا رو روی زمین مینشونه انگار داره تنبیهشون میکنه اسد دکمه کنترل میزنه تا هدایت مهاجر رو در دست بگیره موافق اراقی ها عصبانی با سربازا صحبت میکنه بعد ما خواهی شدی. شدیم مهاجر سنگینه چی شده؟ مسلح؟ از دور راکت ها رو زیر مهاجر میبینن این شده که قدمش خیر میشه اینجا رو به اینجا جایی بهتر از اینجا یه امتحان می‌خونم. اسد ارتفاع رو کم میکنه و سر مهاجر به طرف مقر اراقی ها پایین دو تا راکت به اونا نمیخوره اراقی ها متوجه مهاجر شده از جا بلند شده به طرفش تیراندازی میکنه مهاجر اوج میگیره و از دست اراقی ها فرار ما فوق ها اونا رو دوباره روی زمین مینشونه اسد دوباره مهاجر رو بر میگردونه ها متوجه نیستن و که دوباره مهاجر این بار به هدف میخوره و تعدادی رو میکشه ایراقی های باقی مونده تیراندازی به مهاجر رو شروع میکنن مهاجر بازم فرار میکنه اسد و علی بلند میشه. فرمانده ایراقیا کشته شده. میترسم مارم بیگیرم. تدمیش مسافری بدن. این جا آخرش. ایراقیا به اون و بقیه زخمی ها رسیدگی میکنه. اسد باز هم سر مهاجر رو به پایین هدایت میکنه. نشونه میگیره و ایراقیا که مهاجر رو می بینن فرار میکنه. انگار کاری از دستشون بر نمیاد. از روی تانک پایین میپرن و میرن. به نظر میرسه راکت به انبار آزوغه خورده. چند قوطی کنسرو پرتاب میشه. دو سه تا قوطی کنسرو هم به علی و اسد میخوره. میبینی آقا اسد؟ این مهاجرم شده سفیر روسیه کریم. این کارشون یه ریسک بود. دستشون درد نکنه که به فکرمونه ما, ما مهاجر کم داشتیم. کار علی دو قوتی کنسرو از زمین بر می داره. اسد هواپیما رو هدایت می کنه و جهتش رو عوض می کنه دکمه رو می زنه و هدایت اون به محمود می سپاره. سعید که توی کامیون نشسته مهاجر رو میبینه که به طرفشون میاد، پیاده میشه مهاجر ارتفاع کم میکنه و روی زمین میاد محمود نشسته بر زمین مهاجر رو هدایت میکنه و از کار خودش راضیه. مهاجر مسافتی رو روی زمین طی میکنه، به محمود و سعید نزدیک میشه و محمود با صورتی خاکی عشق میریزه عملیات موفق بوده مهاجر به محمود میرسه و محمود اونو همچون یک موجود زنده در آغوش میگیره سر روی بالا اون میذاره و گریه میکنه سعید ایستاده و محمودو نگاه مینه آشینی از دور نمایان میشه حاجیه بمبی نزدیک که اونا به زمین میخورد. حاجی بالای سر محمود میاد و میبینه که چطور مهاجر رو در آغوش گرفته و گریه میکنه اسد ولی متوجه نیست تازه اسد متوجه حضور حاجی میشه آروم از زمین بلند میشه و مقابل حاجی قرار میگیره. حاجی عصبی نگاه قذبالودی به محمود میندازه و سیدی محکمی بهش میزنه سعید حاج و واج اونا رو نگاه میکنه. حاجی بدون هیچ حرفی به سرعت دور میشه. سوار ماشینش میشه و میری. و سعید که نگاه میکنه. محمود سر به زیر انداخته. محمود دستی به صورتش میکشه. جای سیلی درد میکنه. بمبی نزدیک اونا به زمین میخونه. سعید میشینه. اما محمود توی حال خودشه. یه بمب دیگه جلوتر از ماشین حاجی که در حرکته میخوره و حاجی کمی تغییر مسیر میده یه بمب چند متر عقبتر و حاجی میره محمود فلود در دست صورت سیلی خوردش رو گرفته ناراحت به دل نیزار میزنه سعید به طرف پرنده میره حاجی هم دیگه دور شده سعید میخواد مهاجر رو جابجا جا کنه که متوجه صدای فلوت محمود میشه صدا از دل نیزاره به همراه علی که قفور رو کول کرده در حرکتان که هلیکوپتری رو می‌بینن. جامون لو رفت. از کجا مطمئنی؟ اونجا بالاسر توپونه‌شونه. بالای شبیه شده. فکر کنم دنبال جنازه اومدن. اون کلا گونده‌ علت شده. کجا میری؟ هر چی دورتر بهتر. به حرکتشون ادامه میدن. هلیکوپتر همچنان ایستاده سر از منده بین نیها در حرکت ها. ناگهان اسد لحظه ای می ایسته. متوجه چیزی شده علیا هم می ایسته و برمیگردد سب کن اسد یکی از هواپیماهای خودشونو پیدا کرد جلو میره دستی به اون میکشه میشینه و سرش رو روی هواپیما میذاره اون رادیو رو بده همون دستگاه کنترل هواپیما رو میگه علی در جبر رو باز میکنه و رادیو رو به اسد میده اسد آنتن اونو باز میکنه روشنش میکنه اهرام کنترلو رو تکون میده اما نه، حرکتی نیست علی هلکوبتر رو میبینه که به طرف اونا میاد بپوشونش، بپوشونش، بپوشونش بپوشونش بپوشون. هر دو سری با نیهای خشک روی هواپیما رو میپشون هلیکوپتر نزدیک میشه علی گلنگدن کلاشینکوف میکشه و آماده تیراندازی میشه اما هلیکوپتر از بالای سرشون رد میشه و راه خودش رو ادامه میده علی بلند میشه و نگاه میکنه و مطمئن میشه که هلیکوپتر رفته ها رو دیگه لغو میکنه. اسد دکمی رو روی کنترل میزنه و بالاهای هواپیما شروع حرکت میکنه. امتحان میونه. همه چیز درست خوشحال میشه. مارش نظامی از رادیو پخش میشه و سعید سینی کاسه در دست از بین رزمنده ها که در دو ستون حرکت میکنن به محمود نزدیک میشه. ارد رو میفته. سعید سینی رو روی پوکه های میدان گابمون زایده عملیات کجا شده؟ طرف دلوران ما عملیات کردیم نه جواب تکشونو رو داده ایم عقب میشستم ببینم تو نمیخوای بدونی گابمون چند قلو زایده چی شده؟ ستات خواستانم یعنی نمیدونم پیغام رو بردن دم سنگه شاید حاجی رو خواستم نخیل شما رو خواستم با من حاجی از بچه ها کرده رفته یه نامم برات تو سنگر گذاشته تب کن ببینم بذار اینا رو بذارم یک گوشه چفیه رو از دور کمرش باز میکنه و دور گردنش میگذرم میگم نکنه صدارتی مقامی چیزی باشه کش به همین سادگی اگه این هم باشه من این وسط چی کارم چه گمونم قضیه صبح هر دو وارد ستاب میشه سردر ستاد پرچم الله و اکبر و کنار سنگر پرچم ایران دیده میشه اسد مغموم نشسته سعیدم میاد و میشیم هیچ حرفی نمیزنه مردی بالباس سپاه وارد سنگر میشه با هر دو رو بوسی میکنه. سلام علیکم سلام علیکم خسته نباشیم سلامت باشیم سلام سلام علیکم خدا قوت هر دو سر به زیر انداختن آقا محمود کدومتونه؟ ما... حاج آقا فرقی نمی کنه جفتمون توش دست داشته عجب خدا توفیقتون بده خلبان کدومه که حاجی یه عرض کچیکی داشتم اگه چند نیم فرصت باشه میتونم بفرمایید تو حسینی من تو حسینی است. باشه ششم سعید و به حسینی میرن چند نفری اونجا هستن آه. این برادرمون به مدتی با آقا حسد بوده با هم اونست داشتم اصلا باعث ول کردن دانشگاه هم آقا بودم. بیامچی رفاقتی اگه باشه؟ مگه میشه همینطور ولش تو خاک دشمن باور کنیم فقط سعید جان تمومش کن حاج من گوشم با شماست بفهمم میدونی صبح چه ضربه ای زدیم؟ چه ضربه؟ بالاا به خدا سعی و سالم برش کردوندی مگه ها جوفی به شما نگفتن من نمیفهمم شما از چی حرف میزنیم مگه جریان صبح نمیگی؟ چرا؟ نزدیکای های ظهر امروزی خبر محرمانه بمارسید خبر اینه؟ سپاهی سررسیدی که دستش باز میکنه و کاغذی توی اون پیدا میکنه فرمانده محور عملیات دشمن تو بمباران هوایی کشته شده ما امروز جز پرواز مهاجر پرواز دیگه ای نداشتیم و کمرشون شکسته الان گیج و مونده شدن از فرماندهی خواستن مسئول این کار تقدیر بشه من به روفی خبرو گفتم اون انداخت گردن من البته دلیل اصلیش اتمام مأموریتش بود محمود س چیزی شده؟ سعیدم سرش رو پایین میدازه خلبانی که این کار کرده ما نیسته ماجی اون حسده ما فقط پاس داریم مگه شما هنوز باشون ارتباط داریم؟ تنها یه ارتباط اونم با مهاجه ما اینجوری با هم صحبت میکنیم من اینو نشنیدم جای تعجبه که به شما نگفتن چندبار بار اصرار کردیم بریم به کمکشون ولی حاجی روفی یه جمله ورده زبونش بود دم بدم شناسایی من نمیدونم چه مسئلهای حل شده که جانشین تعیین کردن شما زود قضاوت کردی روفی بندهی مخلصی حاجی به اصرار من چند ماهی اینجا موند اون فرمانده گردانه همین الان نیروهاش رو دهلوران درگیرن دیگه نمیشد نگرش داشت اما در مورد اون برادرمون اسد دلم نمیخواست این سر رو من بگم شاید مسلحت اینطور بوده آقا اسد خواهرزادهٔ رعوفی فلان این ها که پیشتون باشه. موقتاً دنبال کار بریم. دنبال کدوم کار؟ همون جمله روفی دم به دم شناسایی. این چند شن روز منطقه خیلی حساس شده خیلی پیش. هاجاقا میره. گرفتی؟ روز بعد محمود و سعید مهاجر رو تحویل میگیرم خون پاره ای زده میشه. محمود توجه نمیکنه و سرگرم مهاجره از زمانی، حسبانشو زامانی آقا محمود اینو خون خونپار پاره زامانی خون پاره دیگه که محمود و وادار به عکس العمل میکنه کلاهی منو بده سعید کلا خود محمودو بهش میده محمود کلاشو سرش میزاره اینجا لور رفته کور می میزنن اونم همه تیکه جا رو به خودمون راه نمی کنی اقلا به مهاجهرم کن چی می خمپره دیگه و سعید کف قق میشی ترکشی به کوول ما تکیفمون چیه؟ سرپا پاوایسی بهتره خیزبری بری تککش می گیره بهتره. حالم داری تیر خورد تیر اراقی ها به مهاجر حسابت میکنه و در دمش آتیشی دیده میشه اسد هم نگران متوجه موضوع شده مهاجر آروم آروم به سمت زمین میاد و در حال سقوطه هیچ کاری از محمود بر نمیاد از اسد هم کاری ساخته نیست علی ناامید به اسد نگاه میکنه چی شده زدنش اسد آنتنو میبنده خاموش میکنه و اونو دست علی میده پیرهنشو درمیاره زیر پوش آبی تنشه پلاکش نمایان میشه پیرهنو به علی میده و خودش را میفته علی صد راه عسد میشه میخایی چیکار کنی آقا اسد سوخت شاید بنزین داشته باشه فکر کردی فقط تو دیدیش الان همهشون میریزن اونجا فرقی به حالمون نداره نارنجک علی به آرومی و با تردید یه نارنجک به اسد میده دستشو محکم میگیره و بعد هم رو بغل میکنه کافورنایتون بهتره باشه. اسد از علی جدا میشه وارد آب میشه و از زیر سیم خاردار رد میشه آروم توی آب راه میره و بعد شروع به میشه علی داره اونو میبینه نگران اصد به نیزار اون بر رودخونه میرسه و وارد نیزار میشه علی تنها مونه روی نیهای خشک راه میره و به مهاجر میرسه به طرفش می نگاهی بهش میندازه دری رو باز میکنه چیزی رو دور میندازه و محفظه رو خالی میکنه ظرف بنزینش هم بر نارنجک رو از بغل فانوسخش بر میدونه زامنش رو میکشه توی قسمتی از مهاجر که خالی کرده نارنجک جاسازی میکنه و درشو میبنده صدای قایقی میاد ظرف بنزین رو بر و سری دور میشه و در بین نیها خودشو مخفی میکنه اراقی یا که محل سقوط مهاجر رو شناسایی کردن با قایق نزدیک مهاجر میشن یه گروه هشت نفره از سربازا سه نفر پیاده میشن و به طرف مهاجر میرن اصد سری میده و دور میشه و چند اراقی قفور زخمی رو حمل میکنن تا به قایق میرسن و اونو توی قایق میذارن. اسد عرق کرده و خیس، ظرف بنزین در دست مبهوت نگاه میکن علی پیش اسد میاد. عراقی‌ها یکی از های خودشون هم به قایق میبرن. قفور زنده است. عراقی‌ها یه جنازه رو هم به قایق منتقل میکنن. توسم جلشون در مییا؟ اما قاپور نذاشت. با کلاش تهدیدم کرد که دور شد دو قایق اراقی که حالا قفور در یکی از اونها اسیره حرکت میکنن و اسد فقط نگاه میکنن هر دو قایق عبور میکنن و میرن اسد به گریه میفته و علی هم متحصر محمود در قایق نشسته کلاه خود در بغل فلوت میزنه سعید نگاش نگاش قایقی به اونان نزدیک میشه جواد جواد نگاهی به سعید تو برای چی اومدین؟ بابا بلندشین بیای جواب منه بده کی بهت گفت بیای اینجا؟ خودم گفتم بیا منتظر چی هستی موجزه؟ همه چی برای خوده؟ یه ذره به فکر زیر دستاد نیستی؟ مطمئنم اگه اسد اینجا بود اولین نفری بود که گوشتو میکشی صدایی نیشده خورای مغزم میبینی همش به خاطر کلشقی این جنابه تو دلتو نعی بردی تن تو آوردی برای همینم نگرانیشی میتونی اونم ببری آخه اینطوری که نمیشه اقلا با هم بریم تو هم میری سر پسته گفتم کشت... سر پسته سعید به قایق جواد میره و میشینه. جواد میره و موتور قایقش رو روشن میکنه. چرخی میزنه و از محمود دور میشه. محمود تنها و فلوت به دست توی قایق نشسته. فلوتو به دهان میبره که بزنه. نه نمیتونه. به گریه میان. اسد و علی مهاجر رو سر دست گرفتن و در نیزار لحظه لحظه‌ای می‌شینن و مخفی میشن. چهار سرباز اراقی در بین نیها به دنبال اونا هستن. ها آهسته جلو میاد. نیها رو کنار می‌زنه. علی از مخفیگاهش بیرون میاد و شلیک می‌کنه و سه تا اراقی رو می‌زنه و یکی از اون‌ها فرار می‌کنه. کن، شکن. بیا. آمده, امده. علی سلاحشو همایل گردنش میکنه و به کمک اسد دوباره مهاجر رو بلند میکنن و بین نیها راه میافتن از تپهی پایین میان وارد راه صافی میشن مهاجر رو زمین میذارن. میخوان برای پرواز آماده بشن علی اطراف رو چک میکنه خبری نیست اسد هم کنترلو رو از جبه در میاره روشنش میکنه و بالاهای مهاجر رو چک میکنه کار میکنه علی ناگهان از دور چند سرباز اراقی رو میبینه که به اونها نزدیک میشن اسد سعی میکنه سریع موتور رو با چرخوندن منخ به کار مندازه نگاهی به راه میندازه چند مانع سر راه حرکت مهاجر میبینه میره که اونها رو برداره علی خشاب رو در کلاش میزنه اسد به کارش ادامه میده و راهنما میخواد مانعش بشه کجا داری میری؟ اینا؟ اونه به من نمیگی. به طرفشون تیراندازی میکنن. علی اصد پشت تانک سوخته ای میده و خودش شروع به تیراندازی میکنه. دو نفر رو میزنه. خودش هم پشت تانک سوخته میمونه. علی سه تا پلاکی که با زنجیر به گردنش آویزون بگیر. بوده در میاره و جلوی عصد میگیره که بگیرتش بگیر علی عصد مردد به ها نگاه بگیره. و بالاخره عصد پلاکا رو میگیره عراقی ها دارن نزدیک میشن علی چند تیری سمت اونا شلیک میکنه اراقی ها سنگر میگیرن عصد زنجیر پلاکا رو میندازه گردنش و ماهات به علی نگاه میکنه علی دلو به دریا میزنه و میره که راه و پاک ها اصد به طرف مهاجر میره ملخ میچرخونه تا هواپیما روشن بشه علی در حین شلیک به اراقی راه حرکت مهاجر رو پاک میکنه. اسد ملخ مهاجر رو میچرخونه علی یه اراقی دیگر رو میزنه اسد ملخ باز هم میچرخونه علی تخت پاره دیگه ای رو از سر راه برده چرخش ملخ تخت پاره دیگه ملخ تیراندازی علی ملخ تیراندازی ملخ و علی تیر میخوره اسد ملخ و همچنان میچرخونه علی به زمین میفته اسد نظارگر تیر خوردن علیه مهاجر روشن شده اسد بلند میشه میسته و نگاه میکنه سرباز های عراقی به طرف علی بیان چند تیر دیگه تفش می کنه. اسد مغلوب سربازهای عراقی رو میبینه که دارن بهش نزدیک میشن. پلاکا رو از گردنش در میاره به قسمتی از مهاجر که مثل قلاقه آویزون میکنه. سربازها باز هم نزدیکتر میشن. مهاجر راه میکنه. روی زمین حرکت می سربازها باز هم نزدیکتر میشن و تیراندازی می حرکت مهاجر سریعتر میشه. اسد دنبالش می سرواز که مهاجر رو دیدن میخوام بزننش اما تیر بهش نمیخواه علی روی زمین افتاد بالاخره مهاجر از کنار علی از زمین بلند میشه. علی که آخرین نفس رو میکشه با دیدن پرواز مهاجر انگاه فکر راحت شده باشه سرش روی زمین میفته و شهید. سربازهای سرواز های سعی میکنن پرنده رو در هوا بزنن. اما نمیتونه مهاجر در هوا چرخی میزنه و از دست فرار میکنه. اراقی که ناامید شدن به طرف اصد که کنترل دستش تیراندازی میکنه. یه تیر به شونه چپ اصد میخوره خوید اصد به میون نیزار می و اراقی ها دنبالشن. مهاجر به حرکت خودش ادامه میده. ده با یک دست مهاجر رو کنترل میکنه. کنه هم به دنبال اصد وارد نیزار میشه. شد اصد به این نیها ناپدید میشه. پنج سرباز اراقی در مونده می مهاجر در آسمان گردشی میکنه. یه اراقی نارنجکی در میاره مهاجر در آسمان بقیه هم نارنجکاشون رو در میاره زامنها رو میکشن مهاجر همچنان از طرف اسد کنترل میشه هر پنج نفر نارنجک ها رو به طرفی که اسد پنهان شده پرت میکنه و اصد که مورد اصابت نارنجک قرار گرفته در میان دود حاصل از انفجارها. آرام آرام میشینی. کنترل مهاجر هنوز دستشه عسد میفته و صدای پای اسبی رو در ذهن میشنن ناگهان در دیدگان عسد پردهای شکافته میشه خیمهای در حال سخدنه عسد در نیزار افتاده و پسر بچه سیاه سیاهپوش رو میبینه که میان آتش ایستاده و به خیمه ای سوزان نگاه میکنه خیمه میسوزه و میافته و از دیدگان اسد نیزار در حال سوختن می میبینیم و پلاک های وصل شده به مهاجر در آسمان رقصان در نور خورشید به هم میخورد عزیزان شنونده توفیق اینو داشتیم که در این برنامه با فیلم سینمایی مهاجر در خدمت شما عزیزان باشیم. اثری از ابراهیم هاتنکیا که در سال 68 ساخته شده بود. امیدوارم که مورد توجه شما قرار گرفته باشه. اما عزیزانی که در این برنامه ما رو همراهی کردند. جناب آقای علی حاجی نوروزی صدا بردار بسیار خوب برنامه و فرشاد آذرنیا تهیه کننده این برنامه که بسیار هم زحمت می‌کشد و بنده ای که در خدمت شما بودم بهرام سروری نژاد امیدوارم باز هم بتونیم در برنامه رادیو فیلم در خدمت شما باشیم تا برنامه دیگه خدا نگهدار